سلام علی خیر خلقهی و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله الالمین اول غاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس دهر و امام العصر خجت ابن الحسن العسکری المهدی عباد فلعنت الله الا اعدائه مجمعین من الان لا قیام یوم خوب خب ما در این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان به حول و قوه خداوند شرحی خیلی کوتاهی بر نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام نامه سی و نهج بلاغه که شبهای گذشته عرض کردم که این نامه سراسر از مطالب حکمتامیز و سودمنده که امیر علیه السلام اینا رو برای فرزندشون آماده کردن دیشب به این جملات رسیدیم که حضرت می که به فرزندشون فکن من و علا حضرن ان یدره و انت علا حالن سیعه. می فرمین که خلاص برحضر باش متنبه باش که مبادایه وقت مرگ به سراغ تو بیاد و تو مشغول معصیت خدا باشی به این جملات دیشب ارائزم رسید که عرض کردم در روایات هست که انسان در اون لحظهی که داره معصیت میکنه ایمان نداره اگه ای کسی بتونه با ایمان از دنیا بره اهل نجاته ای کسی بتونه این گوهر ایمان رو در لحظه مرگ برای خودش حفظ کنه این اهل نجاته چیزی که هست تو روایات هست که انسان تو اون لحظه‌ای که داره معصیت میکنه ایمان ازش جدا شده حالا یه ایرادش اینه که با ایمان از دنیا نمیره یه ایرادش هم اینه که دیگه اصلا فرصت توبه نداره. این ما حالا خب این ما رمزون فرصت داریم توبه کنیم. اما کسی که در حال معصیت از دنیا میره دیگه مهلت توبه نداره. خب اصلا این آخرین جمله شب گذشته. بعد میفرماین که یا بنیه اینم خیلی جمله ارزشمندیه یه توجهی بفرمایید میفرماین که یا بنیه اکثر من ذکر الموت میفرمان خیلی یاد مرگ باش یعنی قرآن هم اگه نگاه کنین قرآن همش میخواد مردم رو یاد خدا بندازه یاد معاد بندازه یاد مرگ بندازه همش قرآن سر سرینه اینه یا یاداوری توحیده. این اینهی میخواد مردم رو یاد و خدا بندازه یا یاداوری معاد یا ذکر مرگ یاد مرگ یکی از چیزایی که انسان رو تربیت میکنه همین یاد مرگ هاتون خیلی از عرفا بودن که خودشون اینطوری بودن به شاگردانشون هم توصیه میکردن که قبرستان زیاد بریم میبینید یه وقتی یه عزیزی از شما از دنیا میره مثلا یکی مادرش از دنیا میره پدرش از دنیا میره قبرستان اینو به خاک میسپره خیلی روش تأثیر میکنه های تحت تأثیره یکی از چیزهایی که انسان رو تربیت میکنه یاد مرگه من میشه تو همین الان که من دارم اینجا سخنرانی میکنم یه ده الان پاشون رو به قبله است اسرائیل داره اینا رو قبض روح میکنه اینا ساعت های یا لحظات آخر عمرشونه عزیزانشون هم دور اینا جمع شدم دارن گریه میکنن مثلا پسراش دختراش ندارن عشق میگیزن یه نوبت ماست دیگه. یه روزم ما قامون رو به قبره. بچه‌هامون جمع میشن به حال ما گریه میکنن، هشت میزنن. همین الان که من دارم مثلا تو دهات ها اینطوریه دیگه، دهات ها نمیذارن که مرده رو زمین بمونه، زود دفنش میکنن. مستحب همین الان این هر خوبی نیست که آخر و زمان مرد ها رو نگه میدارن میگم بذار جمعیت بیان نهبا به جمعیت چیکار دا؟ مورد رو نباید نگه داشت تو ده اگه این مقامت دنیا بره میدارن دف میکنن هم غست میدن هم دف میکنن. همین الان که من دارن سخرانی میکنن یهتر رو دارن بند کفن رو باز میکنن میگن صورتشو بذارین رو خاک این صورتشو میذارن رو خاک بعد میگن سنگ ها رو بچین خاک رو بریزین یه روز هم نوبت ماست دیگه این خیلی آموزنده است اما امرونه امرون می میگن اصلا از مرگم صحبت نکنیم بعض اصلا خوششو نمیاد مثلا ما از مرگ صحبت میکنیم بعضی با امشم میرن میگن با این که همش از مردن میگه اصلا میگه اسمش هم نیار میگن این همه مباحث گلو گلو گلو هست دار رفتی مرگ رو گرفتی از بهار بگو از میواهای تابستون بگو از خوردنی ها بگون اصلا رفتی این همه بحث اصلا میگن به گوشمون هم نخوره چون ایش و نوشمون رو چکا میکنه منحدم میکنه مرگ ایشو نوش شما رو منعدم میکنه یه جمله پیامبر دارد اذكرو حادم اللذات یاد کنین اون چیزی که لذت های شما رو همه رو منعدم میکنه گفتم که ما حادم اللذات یا رسول الله فرمودن الموت گفتن چی میاد تمام لذتهای ما رو منحده می کنه؟ مرگ تو قبل که اصلا دیگه تش جنازه هم نمیکنن. کنن مثلا یکی بمیره زنگ میزنن، زنن هم شب میان، مثل مثلا دو نصف شب میان، میگن همسایه ها جنازه رو نبینن حول کنن یه باشکی میبرن تو تاریکی همه خوابن دیگه دو نصف شب هم خوابن این ماشین نشکش میاد، دو تا از اینا میرن، تابوت رو بر میذارم، میبرن، دف میکنن بعد یه نامه میاد در خونشون که مرده شما رو فلان جا دفت کردیم، گل میخواین ببریم، چی ببریم؟ ببریم. که موادا یکی چشش به تابوت بیفته، لذتش منهده میشه. اما قرآن اینجوری نیه. قرآن همهش میگه مرد. من تو روایت دیدم اگه سه چیز نبود این آدمیزاد در مقابل هیچ چیزی کرنش نمی کن بلخواه آقایی یه موجود سرکشی آدمیزاد من یه بار بردان گردم که مثلا یه وقت میدید طرف سرطان داره قتل آم می کنه, دستور میده ده بکشن. اصلا خود شیمی درمانی میشه ولی یه دفعه دستور سازن نتانیاوی یا آقا تو امرش مریم این سرطان داره و فلسطینیان رو میکشن سه چیز اگر نبود این انسان در مقابل هیچ چیزی سرفرود نمیابود یکی مریضی چون اینان نعمته اینا. یکی مرض. اینا مریض که میشه، خاذه میشه. ما یه همکار داشتیم، به این گفتن برو یه دونه تست سرطان بده، که مشکوک این قصه. رفت تست داد. اون موقع کش نمی‌کردن. گفتم مثلا 20 روز، من نیاد 20 روز، 20 تا ایلو طول می‌کشه جوابش بده. تو این 25 روز این عاجز عاجز شده بود. مثل مرده های متحرک میومد سر کار مدیرم هم بوده به همه سلام میکرد و ما سلام همه علیه کنزم یه عارفی شده از ترسش مرگ آدم ها گردن کلوفت هم باشی بینی تو میماله به خاک حالا مریضی مرد بوی مرد می اومد دیگه به آبدارچی هم سلام میکرد به همه اعترام می زاشد. بعد گفتن هیچ نیست دوباره سرکش شد <تصالح> اصلا دوباره یک تاقوتی شد یکی مر... مرز یکی مرگ این فرعون با اون سرکشی که داشت وقتی تو نیل داشت قرغ می شد دیگه داشت می مردن زیر آب دهنش که می اومد بیرون می گفت آمن تو برب به هارونه و موسی آیه قرآن ایمان آوردم راست می گفتن حارون و موسی خدای اینا حقه این گردن کلوف آدم شد. و دلم میخواد بیاید قیامت ببینیم این گردن چه چجور زلیل شدن خال شدن. مرگ آقا هر گردن کشی رو بینی شده به خاک میبینیم. یکی هم فقر نداری. این هم ابراهیم میگن امتحان های خیلی سختی داد دیگه. ابراهیم خیلی. الان دیگه کدومش آدم بگرد واقعا. یکی پسرش آورد منا قربانی کرد. ابراهیم خیلی امتحان داد. خیلی یه آدم پسرش رو بیارد. بعد که امتحاناش تمام شد یه رفت به دلش گذشت گفت خانایی رو ما رد کردیم. حالا <تصفح> شبه خودمونیم که حالا مغرورم نشیم ولی خانهایی رو رد کرد گذشته رو نگاه کردید چه امتحان های. خدا جبریل رو فرستاد گفت برو تو گوشش بگو که میخوای با فقرم امتحانت کنی <تصفيق> رنگش پرید گفت آقا دیگه منو با فقر امتحانت با نداری دادن نون شب نداری افتاری نداریش تو باشه افتار کنه شما روزه گرفتی افتاری نداری نه برای خودت نه برای زن و بچت الان مردم گرفتار من رفیقم قسم میخورد میگفت قصابی رفتن یه خانومی اومد گفت ده تومن گوشت به من بده ده تومن گوشت گوشت الان کلو پنجا تومن اصکخونشو بده چربیشو بده اصلا قصابی مونده بود گفت یه خورده نگاه کرد گفت یه چیزی درست کرد داد این اومد اینو بررسی کردی این اصلا نه کتلت میشه نه آب گوشت میشه نه گفت اینو چیکارش کارش کنه؟ پس دار گفت هم دعت و من هم <تصفيق> گفت اینو کجا قسم میخور دو روز پیش افتار گفت رفت دعت و منشو گرفت رفت گفت من دلم سوخت به این قصه گفتم خب میدادی می برد. یه چهرتر میدادی می برد. خدا برکت بهت میداد گفت یکی دوتا نیستن که مگه من گنج قارون دارم روزی چند تا پنجا تا از اینا میاد. من چقدر نگه دارم بدم ببرم؟ مردم گرفتارم. تب... گفت با فقر امتحانت کنم. روزه گرفتی نه خودت نه زن و بچه چیز درستاوی ندارن افتار کنم. این امتحان خیلی. کادل فقر ام یکون را. سه چیز اگر نبود آقا این آدمیزاد در مقابل هیچی کرنید. یکی مرگ، یکی بیماری، اینا همش لطفا، آد. جلو گردن کشی آدم میگیرد. ما استادمون میگو اگه بندازند تو بیمارستان اون میگفت دو ماه درد بکشی، شیمی درمانی بشی، عذاب بکشی، اما نتیجهش این باشه. یه شبید دلت بشکنه، از این خر قرور بیای پایی. از ته دل خدا رو صدا بزنی میارزه. گفت اینقدر ارزش داره دل شکسته. این اثرش این باشه بیان این آقا دو ماه درنگ اما از خر غرور اومد پایین. حالا دیگه صورتش گذاشته رو خاک میگه خدایا با دل شکسته داره خدا رو میخواد. ارزش داره آقا اینا لطف خداست. من تو روایت دیدم خدا اگه دلش برای یه بندش تنگ بشه یه بلا کادو میکنه براش میفرزه دلش بخواست صدای شما رو بشنبه صدای اونجوری که،, که نمیتونی اما اونجوری که هسته زینب صدا میزد ما هم صدا درده بی درد میگه یا الله من بعضی جوان ها میان به من میگن آقا شما مثلا روزه میخونی من گریم نمیگیره من همیشه میگم میگم تو درد نداری؟ شما تو درد بله از من نمیپرسیدی که چیکار کنم گریه کنم هیچ درد مندی نمیاد از من بپرسه که من گریم نمیاد الان شما درد اگه داشته باشین، درد خیلی چیز خوبیه جوان ها همین تورا که داریم میای تو ماشین داریم میای درد داشته باشی مثلا من تون صحبت ببخشید. مثلا اصلا خدای نکرده دخترتو دکترا جواب دادن درد داری دیگه تورا که میایم گریه میکنی یعنی من نرسید اینجا هی hey میگی حسین جون حسن جون منو دفخالی رد نکنه hey. اینجا هم که میازم منبر منو گوش نمیدنم گریه میکنه هی hey میگن آقا حرفا این آقا گریه نداره که میگن آقا من برای درد خودم میگم من اصلا نمیدونم این چی میگه من من گرفت. اون دیگه نمیاد من بگه که چرا من گریه نمیکنم میگه تو نخوندی من دارم گریه میکنم من تا این سن رسیدم آقا هیچ دردی ندیدم بدتر از بیدردی خدا کسی رو نخواد اگه کسی دوستش نداشته باشه درد بهش نمیده تو یاد میکنه مست میشه این مرفحین بیدرد لا به قارون خدا تو قرآن میگه لا تفرح. ان الله لا يحب الفرحين مستانه شادی نکن به خاطر نعمت های دنیا خدا اونایی که اینجوری شادی میکنن دوستشون نداره حالا اونم ممکنه یا لام بگه قافله اما اونجوری که آقا شب 11 هم زینب خدا رو صدا میزد اون او. هیچ پیغمبری نتونسته خدا رو اونجوری صدا بزنه امام حسین بهش التماس دعا میگفت میگفت امشب نماز شب میخونی منو دعا کناست <تصفيق> میذنی گیر نمیاد اونجوری که زینب میگفت الهی و ربی ملی غیرک مل درد من مل درده من تو روایت دیدم شما ایمانت هر چقدر بیاد بالا خدا به اندازه ایمان درد بده میده بیشترم نمیده چون بیشتر بده چاپ میکنی خوب نی بعد به اندازه ایمانت بده که طاقت بیاری مثلا شما دو مسغال ایمان بیاری دو مسغال درد بهت میده سه مسغال می ایمان بیاری جایزشا. جایزه جایزه ایمانت سه مسغال درد بهت میده از این جمله جمعه می چی نتیجه بگیرم اگه میخوای بدونی ایمان هر کسی چقدر ببین دردش چقدر بوده بدونی ایمان هست زینب چقدره؟ دردش چقدر مثلا میخوای ببینی ایمان رباب چقدر ایمان اماموسین چقدر ایمان فاطمه زهرا چقدر ببین دردش چقدر اگه دیدیش که یکی اصلا درد نداره بدون ایمان نداره من چون آدم بی درد ایمان نداره درد لطفه اخزناهم بالبعصا و ذرال اللهم یا ذرعون میگه من خفت اینا رو میگیرم با گرفتاری ها افسر رو بهشون تنگ میگن آقا چرا این بنده ها رو چرا آقا میگه میگم بلکه شبا بیان گریه بزاری کنم شد با دل شکسته بیان من رو چون تربیت میکنند اون دل شکسته شما رو تربیت میکنه به همه جا میر. خودت میفهمی که اونجایی که با دل شکسته داری خدا رو میخونی چقدر گیرت میاد خودت میفهمی که خدا داره میگه جونم. این درد بهت میده بعد شما با دلش گسته صدا میده خدا میگه که میگه که جونم میگه دلم اصلا تاییم میگه الان چند ماه صدا تو نشنیم من تو رقایت دیدم به ملائکه میگه من جواب اینو میدم ولی یه ما دیگه میدم میگن خدایا خب میدیم شب بده داره چه میدنه میگن میگم نکنه بدم فرد و شب نیده. <تصفيق> خدا آقا دوست دارن. میخوان فردا و شب بیای. پس فردا و بیای. میگن ما دوست داریم صدای تو رو بشنبیم. ولی بعضی ها رو نه. بعضی ها رو خدا میگه اصلا دوست ندارم. روز خدا اصلا دوست ندارم. اون یه دانه تکبیر بگه. اصلا میگه من صدا... من تو روایت دیدم میگه انقدر به این بندم بدین تا یه جام منو صدا نزنید. <تصفيق> سلامتی بهش بدین بچه های سالم بدین پول فرابون بدین من دوست ندارم صدای اینو بشنوم. آدمایی هستن آقا یه عم زندگی میکنن یه دونه یا الله نمیگن. یه کربلا نمیره. یه یا حسین نمیگه. <تصفيق> به خدا ولی آقا شما رو دوستت دارن. چون یه بچه‌رو که دوست داری وشگونش می‌گیری جیغ میزنه کیف می‌کنی ناچام جلز و بلزش می‌ندازیم یعنی چون یه بچه‌ دوست داری ففله مثلا خوشگله یه بشگونش می‌گیری این جیغ که میزنه میگه جونم بغلش میکنی بوسش کنی. خدا خدام شما رو به جلز و بلز می‌ندازه وقتی صداش میزنی میگه جونم میگه دوست دارم صدات رو چون میخوام از من دور نشی میخوام بیای بغل من اینا نطفه ولی اگر لطف نبود آقا خدا به زینب کبرا این همه بلا میدهد. اگر لطف نبود. کسی رو من دیگه آخر این بحثم میخورد بیراهم رفت. از شما سوال میکنم. کسی رو تو این خلقت خدا به اندازه امام حسین دوست داشته؟ شما اگه داریم بگیم بگیم آقا من یه نفر میشونم. خدا بیشتر از امام حسین. کسی رو تو این خلقت خدا به اندازه امام حسین دوست داشته؟ برو این چقدر بلا ب از همینجا بدون آقا اینا لطف خدا کی رو به اندازه امام حسین دوست داشته همه جام بلا رو سر کشید امام حسین تازه میگف حل من مزید میگف بازم اگه از اینا داریم بیاریم چیز خوبیه خدا بود دیگه من چی بدم آخه چی بیارم آخه برای این بابا انگشتش هم سر انگشتر رفت <تصفيق> آقا چی اصلا بدن زیر سوم عصف رفت این چی میگه علمه برای این لطفه نطفه ما نمیفهمیم اینا لطف خداست. خدا هست قادم تو گودال میگفت رزن به رزائه حسنی من به انگش میکرد حالا قرار دم اینا بیراه نرم امام می پسرم پسرم مرگو زیاد یاد کن اکثر من ذکر الموت همشم به یادت بیار که موقع مرد چی به سرت میاد این نگاه کن ببینو اونا که رم می چی به سرشون میاد باید. چرا من مرگو زیاد میفرماید ؟ حتی یعتیه که و قد اخست منه هزرک میگه اگه مرگ اومد سراخت تو آماده باشی قافلگیر نشی مرگو زیاد یاد کن خیلی آقا میمیرن آماده نیستن در دعاهای این ماه اومده که امام زین العابدین یه شب راوی گفت شب بیست و هفته یه شب گفت از اول شب امام زین تا سحر این دعا رو زمزمه میکرد اللهم مرزقن تجافی اندار القرور این دنیا رو اسمشو گذاشته چی؟ دار قرور قرور یعنی فریب این دنیا دار ما فریب میده هایون این دنیا فریبنده است. هم از دور به نظر آب میاد مینی توش میدی هیچه نید اصلا بعضی الان خیال میکنن اگه یه دونه مثلا فرض کن ویلا شمال داشته باشه بهشته میره تهیه میکنه بعد میبینه اصلا وقت نمیکنه بره انقدر آدم ها اصلا ویلا دارن سال دو هم نمیتونن دارن اصلا این درد سره. یه روز میام میگن فلان جاش خراب شده یه روز میگن که دو اومده زده برده اصلا عذاب <تصفيق> یه روز میگن نمیدونم سرایدارش همه رو بلند کرده برده همش اعصابش خورد. وقتم نمیکنه بره. از دور به نظر آب میاد، میری توش میبینی سرابه. فریبنده به خاطر این میگیره، هیچی بهت نمیده. به خدا دنیا میبره چتون، جوونا، سر آب تشنه بیرونتون میارد میاره. کام بهتون نمیده. توجه بفرمایید. دار ازش تعبیر میکند به دار غرور. یعنی فریبنده خدا یه کاری کن ما خدایی که رو دوست داشته باشه آقا دلش رو از این دنیا میکنه بعضیا با مثلا مریض میشه انقدر مریضیش طولانی میشه دیگه یکی رو من دیدم میزد زمین و نگفت خدای جای من دیگه زیر زمینه تحت شومگه بعدش میومد دیگه از دنیا کنده میشه از دنیا انقدر مهنت می بینه انقدر گرفتاری می بینه دلش کنده میشه اللهم محالتیه که نماز گذار یه رکت دیر رسین امام تشهد میخوره شما نیم خیزین اونو میگن تجافی شما رکت اولت امام رکت دوبه میشه نیم خیز نشستی یعنی میخوایی زود بکنی بری اونو, اونو میگه خدا بکن ما رو ول انابتا الادارن خلود خدای ما رو عاشق اون سرایی کن که ابدیه، همیشگیه. یعنی چی بگیم؟ من میگم ایشالا برادر بگیم کی میشه ما با امام حسین معشوق شیم. کی میشه ما بریم پیشه؟ ما بله بالا اونجا چون نمیخوای آقا با امام حسین معشوق شیم. بالا بله آجه کندشی بری، اینجا خبری نیست که همه اون بره. امام حسین وقتی از دنیا رفت امام زینالابدین اومد بالا بدنش یه جمله گفته خیلی گفت خدا یا دنیا دیگه تاریک شد <تصفيق> امام حسین رفت دیگه گفت دنیا تاریک شد اما دار آخرت نورانی شد گفت خوشحال اهل آخرت حسین رفت اونجا ما رو عاشق اون بر کن بگیم کی میشه بریم با امام حسین من تو روایت در امام حسین میشینه عاشقاش دورش میشینن هی میگن آقا بیایم بریم بهشت میگن کی حسینو نوبل میکنه بهشت واقعاً آقا اون کی امام حسینو برد میکنه بهشت عنابه الی دار الخلود ول استعداد لل قبل حلول الفوت خدای ما رو استعداد به آمادگی به بده آماده مرگ بشیم قبل از این که مرگ سراغمون بیاد همینو دارد میگه مرگ رو زیاد یاد کن بذار آماده مردن شیم مرگ قافلگیرت نکنه ناگهانی مرگ نیاد سراغت و تو رو قافلگیر بکنه بختت بزنه من قسم میخورم آقایم قسم میخورم همه ما شاید یا اکثر ما جوری می‌میریم که بختمون میزنه یعنی میگیم ما یک در هزار احتمال نمیدادیم مرگ ما اینجا باشه خدا شده مرگ آدم قافلگیر میکنه می‌گم من اصلا همه چی فکر می‌کردم، اما فکر نمی‌کردم که من دیگه اینجا بمیرم اینجور بمیرم نه میگه آماده مردن باش حضرت آیت الله ازمای عراقی وقتی از دنیا میرفت صد و خوردهی سال اوم کرد تلویزیون نشون داد این اومدن که باش مصاحبه کنند که های آخرش بود دیگه پخش می گرد این اشعار رو می خوند که مال امیر المومنین من نوشتم هم. این اشعار از تعمیره. یا من به دنیا اشتقل <تصفيق> ای کسی که دنیا مشغولت کرده، قافلت کرده. هی اینو اضافه کنم، اونو چیکار کنم؟ یا من به دنیا اشتغال. قد قرره و طول العمل. ای کسی که آرزوهای طولانی فریبت داده. الموت یعتی بغتتن مرگ ناگهان میاد تو میگیره ولقبرو صندوق الامل تنها چیزی هم که تو قبر به درد آدم میخوره عمله حضرت زهرا با اون عظمتش با اون عظمت با اون همه عمل ساله من نمیدونم راجب بیوی بی چی بگم یه عمل ساله بیوی بی اینه که بچه‌ای مثل حسین ابن علی تر کرد خدا یه عمل سالهش اینه که دختری مثل زینب کبرا تربیه ده. پسری مثل حسن ابن علی تربیه این با اون همه اعمال ساله وقتی از دنیا می رفت به امیرالمومنین المومنین می بالا قبر من بشین قرآن بخون که اون شب شب سختی مرده ها نیاز دارن اون شب با زنده ها اونس بگیرن من منو اون شب تنها نذارم حضرت فاطمه زهرا امیر المومنین نشسته بود بالا قبر فاطمه تا صبح قرآن می خب ما برای شب اول قبرمون چی کار کردیم نامه درس آقاییون شما چی کار کردیم شما هم بگو که من محبت فاطمه رو برای اون شب ذخیره کرد من محبت حسینه میان آقا بوت میکنن تو قبر پا تو بو میکنن میگن خیلی توش نی دست تو بو میکنن میگن خیلی توش نی قلب تو بو میکنن هم وقتی به چشمات میرسن میگن خوشاب و حالت <تصفيق> چشات بوی امام حسین میده یاد مرگ به مولای ما امیرالمومنین گفتن یکی از پایین منبر بلند شد گفت آقا سختترین لحظه برای یه انسان که یاد رفتمون شب اول قبر این دیگه از زهرا میگیم یکی از اونور بلند شد گفت آقا از این سختتر چیه گفت اون شب دست خالی باشی عمل نداشته باشی اونایی که عمل دارند اون شب براشون شب سختیه اونایی که اهل عبادت بودن اهل روزه بودن اهل انفاق بودن شب سختی در پیش داره. حالا وای با حال این که کسی اون شب بقاطه به پسرش میگه که اینا رو زیاد یاد کن این باعث میشه بری دنبال عمل ساله بری یه چراغی برای قبرت بفرستی برگ ایشی به گور خیش فرست کس نیاورد زپس تو پیش فرست من امشب خواهش کنم از آیون مخصوصا جوانا اگه میتونن برای این آقایی که امشب من روزه میخونم زیاد گریه کنند امشب خب منم تباییت کنم دلاتون رو ببرم بقی در خانه امام زین هم و لابدین اما باید برای این آقا زیاد گریه کرد چون این آقا از بکاون عالم بوده امام صادق فرموندم پنج نفر تو این عالم زیاد گریه کردن گوی سبقت رو تو گریه از همه رو بودن یکی آدم بود آدم دیویس سال گریه کرد توبش رو قبول کرده الان حرات شده الان تا شما میگید یا حسین آدم دیویس سال آخر جبرین اومد امام حسین یادش داد فتلقا آیه قرآن دیگه فتلقا آدمو من رب به کلماتن فتاب ان الله میگه با اون کلمات که توبه کرد ما قبول کردیم خدا به دادش رسید به جبرئیل گفت این اون کلماتو بلد نیبرو بالاخره آقا خدا رو به امام حسین قسم داد همین اسم امام حسین آورد اشکش جاری شد گفت این کی بود همین اسمش رو آوردم ناخداگا اشکم جاری شد روزه بناش خون جبرئیل میگن جبرئیل و آدم همدیگه رو بغل کردن عبارت مقصد مثل زن جوون مرده برای امام موسیم گریه میکردی روزه میخون جبرئیل و آدم مثل زنی که داغ جوون دیده جیغ میدادم خطاب اومد صدق سر حسین توبه و قبض بعد گفتن آدم تو خودتو دعا کردی اگه دعا میکردی زرگیه منو تا روز قیامت به حسین ببخش ما میبخشیدیم الان واقعا این نعمت بزرگی. نعمت بزرگی آقا حسین ابن علی دیویس سال گریه کرد یعقوب، یوسف اینا چهل سال گریه کردند یعقوب از بکاون بود یوسف از بکاون بود یکی دیگه مادر ساداد اونا... اونا دیویس سال چهل سال مادر سادات نود و پنج روز با اونا برابر شد یکی هم امام زین العابدین سی و پنج سال حالا امام دیگه اینا من نگم فکر کنم جفا کردم امام تا زمان خودشو گفته اگه میخواست تا امروزو بگه حتما پسر نرجس خاتونم نبود خدا این آقام خیلی قریبه هزار و ساله داره زجه میزنه. هزار و دیهی سال داره برا جد قریبش روز و شب شب و روز گریه میکنه دیگه میگه من میترسم عشق چشمم خشک بشه میگه اگه عشق چشمم خشک بشه خون گریه میکنه بدلت دموعه دما. حالا یکی از بکاون عالمه اگه میتونین برای این آقا زیاد گریه حالا ما رمزان همارد آب میدید گریه میگه <تصفيق> اصلا آب میدید جگرش آتش میگیره. یه جمله برای جوان ها بگم یه جمله بگم خیلی تنده ولی حقش رو ادا کنیم بخواد ما جملهات تند میگیم میترسیم میگم نکنیم حقش ادا نش. میگم اگه شما یکی رو یکی از شما ها رو آقا جلود جلود با لب تشنه سر بابا تو ببود دیگه آب نمیتونی بخوری هر وقت آب میبینی اون یادت یادتون اصلا آب میدید جگرش آتش میده همین مارمزون هرچی آب میدید دم افتار انقدر گریه میکرد آب مضاف میشد این کنیزا هی میرفتن آبو عوض میکردن آخر یه کنیزی خسته شد گفت نه رسول الله دیگه شما هم داری افراد میکنی و ما مال سی سال پیش، مال سی و پنج سال پیشه هر داغی بالاخره کهنه میشه. نمیشه و دیگه قدیمی شد سی سال گذشته امام فرمودن خیلی بیانصافی گفت یعقوب دوازده تا پسر داشت یه پسرش گم شد نمورد من تو رو باید عکسش رو آوردن نشونش دادم روی پارچه اکسی گفت عزیز مصر شده فقط تو چهل سال نمیتونی ببینیش بعد چهل سال می‌بینیش. زنده هم میبونی. اما انقدر گریه کرد چشاش کور شد فقط فقط بخاطر اینکه بچه شو نمیتونست ببینه و میدونست که بازش عزیز مصره اما میگم من جلو چشم هفتاد گلم و پاره پاره کردم تکه تکه کردم آیا من به اندازه یعقوبم نباید گریه کنم جوون رعنا میدید گریه میکرد بچه شیرخار میدید گریه میکرد باغ میدید گریه میکرد گل میدید گریه میکرد خیلی معذرت میخوام یه رو دید یه قصاب داره گوسبندی رو سر اومد دست گرفت گفت آبش دادی؟ گفت مگه میشه من آب ندم سر گوسفندو رو ببرم گفت کربلا جاد خالی بود از آب هم مزایقه کردم با لب تشنه <صوح> هی بگم آقا یکی دیگه داد میزد اون موقع هتل که نبود هرکی قریب بود می اومد مسجد هتل نبود مسافق می گفت انا رجلون قریب مسلمونا می قریب جاش می چاش می گفتن بیا خونه ای ما ما جا داریم اتاق اضافه داریم اون موقع اینجوری بود یکی تو مسجد می گفت انا رجلون قریب بعد نماز اشاب حضرت اومد جلو گفت مرد عرب برادر عرب امشب بیفتی تو مدین کفنت میکنن یه تعجبی که گفت من مسلمونم این شهرم همه مسلمونن چرا گست نمیدن چرا کفن گفت پس تو غریب نیستی <تصفيق> جاد خالی بود کربلا ببینی سه روز و سه شب بابای من رو خاکهای داغ کربلا بدون گست بدون کفن کاش به همین اکتفا میکردن دیگه اسبار و نعل تازه نمیزدند رو بدن ابی عبدالله صلی الله و علیه یا ابا عبدالله